شیگه ماتسو های چند روز بعد از پنجم ماه اوت سال بیستم شوها برابر 1945 میلادی را به صورت زیر رونویسی کرد. پنجام اوت اسامی غایبان فردا را به آقای فوجیتا رئیس کارخانه رد کردم و به خانه برگشتم تا مقدمات تخلیه اسباب را فراهم کنم. این وسایل عبارت بودند از کیمونوهای تابستانی و زمستانی دارای نشان خانوادگی، سه عدد اوبی سه دست لباس زمستانی، میان اینها یک دست کیمونو کیهاچیجوی بسیار با ارزش وجود دارد که مادر بزرگ زمان رفتن عمه به خانه وقت به او داد و چهار دست لباس تابستانی متعلق به عمه، گتو شلوار رسمی، کیمونوها و هاریهای تابستانی و زمستانی دارای نشان خانوادگی، دو دست لباس غربی زمستانی، یک پیراهن، یک عدد کراوات و گواهی فارغ و تحصیلی شوهرمه لباس های رسمی تابستانی و زمستانی، دو عدد عبی و گواهی فارغ و تحصیلی خودم اقلام بالا را در حسیر پیچیدم و در کیفی که به دوش خواهم انداخت سپیمانه برنج، دفترشیاد داشتهای روزانه، خودنویس، مهر، تنتور قرمز، و دستمال سه گوش گذاشتم این وسایل در سال دوم خاتمه جنگ به همان صورتی که بسته بندی شده بودند به روستای کاباتاک فرستاده شدند و آنها را دریافت کردیم پیوست شیماتسو نیمه شب اعلان خطر حمله هوایی شد و یک دسته از هواپیماهای و 29 از آسمان گذشتند حدود ساعت 3 صبح وضعیت عادی شد شوهرمه از گشت شبانه برگشت. دستهایش توی جیبش بود و درباره به های دیروز که نزدیک روستای کباتاکه دیده شده بودند، گفت آنها فراموش نمی شهرک فوچو را بمباران کنند. خیلی زود آنجا را بمباران خواهند کرد. میگویند آنها جزوه پر از حرفهای عجیب انداخته و رفتند. پس به فوچو هم حمله هوایی خواهد شد. افرادی که دیروز از شهرستان یاماناشی آمدند، گفتند که قبل از حمله هوایی به کفو به 29 جزوه های کاغذ گلاسه بسیار با کیفیتی ریختند و رفتند. در آن جزوه ها نوشته شده بود، ژاپنی های جزیره سایپان یا دیگر جزایر تحت اشغال ارتش آمریکا غذای کافی دریافت می کنند و زندگی بسیار راحتی دارند. کاغذ گلاسه در هیروشیما بسیار کمیاف شده است. ساعت سه و نیم به بستر رفتیم. ششم اوت ساعت پنج و نیم صبح کامیون آقای ناجیما آمد و آنچرا تخلیه کرده بودیم بار زد. در شهرک فروعه جهش نور و قررش صدا دودی سیاه مانند کوه آتشفشان از شهر هیراشیما. برگشتن به شهرک میازو. با غایق به سمت پایین دست پل میاکی رفتیم تا به ساحل رسیدیم. امه سالم است، اما شوهر صورتش زخمی شده. عجیبترین واقعی قرن. هنوز هیچی در نمیدانم. خانه حدود پانزده درجه کچ شده. اینها را در ورودی جانپناه حفر شده در زمین نوشتم. هفتمه او دیروز قرار شد به خوابگاه کارکنان کارخانه در اوجینا نقبه مکان کنیم. اما نشد. در عمل ناممکن بود. با اطاعت از حرف شوهرامه به فرو ایچی پناه بردیم. امه هم همراه ما بود. در دفتر کارخانه شوهرامه چندبار چند بار ریخت. هیروشیما شهر سوخته شهر خاکستر. شهر مرگ و شهر نابودی. جنازه ها ینباشته بر هم. نفرین کنندگان خاموش جنگند. امروز تحقیق در مورد خسارات وارده به کارخانه انجام شد. هشتم اوت برای تقسیم صبحانه زخمی ها بسیار گرفتار بودیم. رؤوس کلی نتایج مشورت در مورد راهندازی و کار کارخانه اعلام شد. نهم اوت امروز هم مصیبت زدگانی آمدند تا اینجا پناه بگیرند. افرادی بین آنها بودند که هیچ نسبتی با اعضای کارخانه نداشتند. اکثرشان زخمی شده بودند. یک نفر هم نبود که لباس درست و حسابی به تن داشته باشد. میانشان کسانی بودند که جعبه یکوچک خاکستر مردگانشان را همراه داشتند. یا کسانی که با خاندن نامو آمیدابودسو، نامو آمیدابودسو، آن جعبه ها را به برآمدگی بیرون لبه پنجره آویزان کردند. مرد میان سالی بین همه سه بر کارت پستال جدید توضیح کرد و حرفهای خندهداری زد که نشان میداد حالش خوش نیست. لطفا رو در بایسی نکنید به آنها آنهایی نامه بنویسید که نگران سلامتیشان هستید. چون در خانه کارت پاستال ها را می سازم، به هر تعداد بخواهید تقدیم می کنم. فقط حرفهایی را که به اینجا مربوط است بنویسید مرد؟ گردنش را با پارچه کسیفی بسته بود و چهره زماختی داشت. وقتی که اداره های پوست منهدم شده اند، آیا کسی برای جمعوری کارت پوستال ها می الان ساعت یکی بعد از ظهر است. بیشتر جماعت در خواب نیم روزند. چون احساس می‌کنم کمی ذهنم بازتر شده است و روز ششم به بعد را مرور می‌کنم. ساعت چهار و صبح روز ششم، کامیون آقای نجیما آمد و آنچه را تخلیه کرده بودیم بارگیری کرد. همراه او همسرش، همسر آقای میاچی، همسر آقای یوشیمورا و همسر آقای دوئی بودند. اینها در همان شهرک یا شهرک مجاور ساکن بودند. کنار بارها سوار و ساعت پنج و نیم آزم شدیم. در مزرعه ارزنی به وسعت 16 تا 19 متر مربع که در زمینی بایر کشت شده بود، عروسکی ای را به شکل یک مرد و درست به بزرگی یک آدم به جای مترسک سرپا کرده بودند. آقای نوجیما با کم کردن سرعت کامیون با دست به دیوار قسمت بار کامیون کوبید و گفت آن را ببینید مترسک است گرچه میگویم عروسک اما مانند پیکری گلی، صورت، دست و پایش را بسیار شبیه آدم و با جزئیات درست کرده و بر کمرش حسیر پیچیده بودند. به صنایع دستی ساخته شده از خمیر کاغذ هم شبیه بود همسر آقای ناجیما گفت شاید مترسکی است که وحشیهای جنوب آوردند. همسر آقای میاچی گفت احتمالاً مانکن فروشگاهی است که بر اثر بمب روغنی دود یا چیز دیگری سیاه شده و همسر آقای دائی گفت مترسک عجیبی است یک آن فکر کردم شاید آدم واقعی است که زغار شده وقتی به فروعه رسیدیم ساعت حدود 6:30 صبح بود. پشتری پنجره خانه های کشاورزان هنوز بسته بود. در خانه پدری همسر آقای نجیما، پدر و مادرش در انبار را باز کرده و منتظر ما بودند. وسایل را پایین آوردیم و داخل انبار بردیم. همسر آقای نجیما گفت برای احتیاط و لطف کردند در ازای تحویل وسایل رسید نوشتند. ما را به اتاق پذیرایی در ساختمان اصلی هدایت کردند و به جای چای و کیک خیار با میسو جلوی ما گذاشتند. مردمی بسیار مهربان بودند. پدر خانم انگار از دامادش خواسته ای داشته باشد گفت هلوهای بیرون هنوز کمی کال هستند اما خوب است امتحانشان کنید. چون با شبنم شب خانک شده فکر کنم خوشمزه باشند. بعد بیرون رفت و با ده هلو روی سینی برگشت. به نظر می رسید هلوها از نوع اکوبو هستند. هنوز کمی سبز بودند. همسر آقای ناجیما لطف کرد و پوستشان را کند. این اواخر آقای ناجیما و همسرش با ما و افراد شهرک بسیار با مهربانی رفتار می‌کنند. این شایعه بین مردم هست که آقای ناجیما پیشتر با دانشمندی چپی به نام مطسوماتو روابط نزدیکی داشته است. بنابراین وقتی جنگ به اوج خود رسید، او برای منحرف کردن نگاه اولیای امور همما غم خود را بر معاشرت با افراد شهرک قرار. آقای ماتسوموتو از دانشگاه آمریکایی فارغ و تحصیل شده و قبل از جنگ حتی با آمریكاییها هایی کرده به همین دلیل چند بار پلیس ارتش او را فراخواند بنابراین آقای ماتسوموتو مقابل افراد شهرداری آدمهای فرمانداری و اعضای گروه دفاع مردمی همیشه جانب احتیاط را رعایت میکرد هنگام اعلان خطر حمله هوایی پیش از هر کسی از خانه بیرون میآمد و با فریاد حمله ی هوایی حمله ی هوایی این طرف و آن طرف می‌دوید. حتی در خانه هایش را باز نمی‌کرد. ظاهراً زمانی تقاضا کرده بود در تمرین نیزه خیزرانی دختران هم شرکت کند چون او دانشمند قابل احترامی است اینطور احتیاط ها بغزاور و متاثر کننده است. زمانی شوهرمه درباره رفتار آقای ماتسوموتو گفته بود ضعف آقای ماتسوموتو مقابل کارمندان دولت ناشی از به هم ریختن زمانه است. سخن حکیمانه یک کار از محکم کاری عیب نمی کند درست است. اما رفتار آقای ماتسوموتو با آن جور نیست. یا یاماموتو کانسوکه هم مدت زمانی گلکاری کرد تا لاغر شود. اما آن رفتار با این کار تفاوتهایی دارد. مورد آقای ماتسوموتو مرض ترس از جاسوس هاست. با این همه وقتی مردی گفت. لباس از تن نمی باید با شهامت روی حرف خود بیستد و این کار را نکند. آقای ماتسوموتو همیشه آمادگی تخلیه وسایلش را داشت. در این حال مراقب بود، مورد شک و زن جاسوسها ها قرار نگیرند. بنابراین با جدیت به افراد شهرک کمک می کرد و هر روز این طرف طرف می رفت. آقای نجیما هم این کار را می کرد که منفعت آن شامل حال ما شد و کامیانی را سوار شدیم که آقای ناجیما راننده آن بود. اما بردن کیمونه چه ارزشی داشت؟ از دید آقای ناجیما، شاید کیمونه و گواهی فارق و تحصیلی من چیزهایی چون لباسهای مندرس و کاغذ پاره باشند. خانه پدری همسر آقای ناجیما خانه اشرافی بود. کسی که چنین دارد، حتما چند هکتار که هم دارد. در حالی که می اندیشیدم حتماً باید دهها هکتار زمین داشته باشد و سخراهای بیرون را نگاه می کردم، آژیر اعلان رفع خطر شنیده شد. ساعت را نگاه کردم. هشت صبح بود. همیشه در چنین ساعتی هواپیماهای شناسایی آمریکایی بدون هیچ کاری از آسمان هیروشیما می گذشتند. طبق معمول فکر کردم همان رویه است و به چیز دیگری توجه نکردم. چهار پنج تا از بچه های همسایه ها به اتاق کامیون که از دروازه وارد شده بود آویزان شدند. روی آن نشستند و شروع به بازی کردند. پدر خانم آقای نوجیما گفت به ما چای خواهد داد و ابزارالات مختلف مراسم چای را آورد. من روش درست کردن آبجوش مخصوص چای را بلد نبودم و چون سنم از همه کمتر بود پایین جا نشستم. داخل اتاق خنک بود و حس خوبی به آدم میداد. پدرخانم آقای ناجیما در قابلمه آبجوش را برداشت در همان لحظه بیرون از اتاق نور کاملا سفیدی جهید از شرق به غرب عبارتی از هیروشیما به سمت کوههای پشت شهرک فروعه مانند شهابی با نوری چند صد برابر خورشید بود بعد صدای قرش بسیار بلندی برخاست جمله وای چه نوری به گوشم رسید که ناخدا بر زبان پدرخانم آقای ناجیما جاری شده. همه همزمان بلند شده و به بیرون دویدیم و پشت صخره و تنه درختان مخفی شدیم. بچه ها از کامیان پایین پریدند و طوری سمت دروازه دویدند و خارج شدن انگار سرزنش شده یا با کسی دعوا کرده بودند. یکی از بچه ها که زمین خورده بود چهار دست و پا و با کشیدن پای زرد دیدهش بر زمین سری خارج شد. به نظر میرسید بچه ها که در اتاق کامیان نشسته بودند به خاطر موج انفجار پرت بودند. آقای ناجیما گفت: پناهگاه آن پشت است اما هیچ کس نرفت. خود آقای نجیما هم حرکتی نکرد. از همه جای شهر ایروشیما دود با ارتفاع بسیار زیادی بلند شده بود. آن را از بالای دیوار سفید می دیدم. مانند فوران دود آتشفشان و مانند توده ابرهای قبل از رعد و برق با هاش یه واضح به نظر می رسید. به هر حال مسلم بود که آنها ابرهای معمولی نیستند. چون نمی توانستم از لرزش زانوهای خم شده هم کنم، بدون احتیاط زانوهایم را بر سخره فشار می دادم که پشت آن پناه گرفته بودم. آقای ناجیما از پشت سخره گفت، احتمالا احتمالان از سلاحی جدید استفاده کردند. همسر آقای ناجیما پرسید، سالم هستید؟ مثل خرچنگ ها که از سخره های ساحلی چهار دست و پا خارج می شوند، من را کمی از پشت بیرون آوردیم. بعد از پشت صخره ها بیرون آمدیم به سمت دروازه دویدیم و به طرف هیروشیما نگاه کردیم. دود تا ارتفاع بسیار زیادی بالا آمده و بالا به یک جوره گسترده ای شده بود. تصویر سوختن مخزن های نفت سنگاپور یادم آمد که زمانی عکسش را دیده بودم. عکسی که بلافاصله فاصله بعد از سقوط سنگاپور مقابل ارتش ژاپن گرفته شده بود و چنان تصویر حراسناکی بود. که در حقانیت رفتار ها شک کردم دود در بلندای آسمان همچنان تا ارتفاع بیشتری بالا میرفت، به اطراف باز میشد، در ابرها رسوخ میکرد و شکل چتری را به خود می گرفت. فکر کردم آیا به بی 29ا چیزی شبیه بمبهای روغنی نیانداختهاند همه همسران با توضیح آقای ناجیما مبنی بر جدید بودن آن صلاح موافق بودند در پایین سراشیبی که از بیرون دروازه دیده میشد، سقف پوشالی خانه فرو ریخته و سفال‌های سقف خانه دیگر هم کنده شده بود. آقای ناجیما و پدر خانمش ایستاده صحبت می‌کردند که چه کار کنند. بعد کنار چشمه رفتند و باز مدتی ایستاده اختلاط کردند. بعد از آن پیش ما آمدند. آقای ناجیما با چهرهی مسمم گفت: احتمالا همه شما نگران خانهتان هستید. اگر بخواهید شما را به هیروشیما می‌رسانم. همسرم نگران بچه هاست، پس به نظرم بهتر است به هیروشیما برگردیم. آن ابرهای ترسناک را میدیدم و شک داشتم که می توان زیر آن ابرها برگشت یا نه. فکر کردم خطرش زیاد است. اما زنان دیگر پشت سر هم حرفهایی چون خواهش می کنیم, کمک کنید و هر طور آقای نجیما صلاح بدانن می گفتند و سرانجام قرار شد بلافاصله برگردیم. هنگامی که با پدر و مادر و همسر آقای نجیما خداحافظی می کردم، یک لحظه دیدم که در قوری مراسم چای روی سنگی دراز و لبه ایوان افتاده است. مادرزن آقای نجیما خطاب به ما گفت این مانند کلوچه ارزنی موماتارو موقع فتح جزیره دیو هرچند کلوچه معمولی است ولی و به هر کدام ما کلوچه ای در پوست خیزران داد. بعد هم لطف کرد و به مرد خدمتکار گفت که برای جلوگیری از آتشسوزی روی بارها سه تا چهار تخته حسیر خیس بیاندازد. ساعت نه آزم شدیم. چون به جاده اصلی وارد شدیم، در آسمان هیروشیما ابرهای سیاه جوشیدن گرفت و صدای رعد شنیده شد. آقای نوجیما با دیدن مردی که سوار بر دوچرخه از روبرون آمد، کامیان را نگه داشت و خیلی آهسته با هم حرف زدند. به نظر می‌رسید به شکلی که ما نگران نشویم از وضعیت ترافیک جاده پرسید. آقای ناجیما از یک بریدگی جهت حرکت کامیون راست کرد و از جاده‌ای که آمدیم برگشت. وقتی به بندر میازو وارد شدیم، کامیون را در خانه ماهیگیری گذاشت که از قبل با هم آشنا بودند و قایقی اجاره کرد. قایقی بادبانی که کمی بزرگتر از قایق ماهیگیری بود با وزنی حدود دو تن و نیم اندام و چهره ماهیگیر او را آدمی کاربلد و قابل اطمینان نشان میداد. آقای نجیما هم که در این وضعیت توانسته بود ماهیگیری پیدا کند آدمی قابل اطمینان به نظر می رسید. در قایق همسران پشت به شهری روشیمان نشسته بودند. درست مانند اینکه سوگند یاد کرده باشند به سمت شهر نگاه نکنند. من هم بی نگاه نگاهم به دو جزیره نینو و اتا بود. آقای نجیما در حالی که تور دسته بلندی به دست گرفته بود گهگاهی بر لبه قایه خم می شد و ایسام شناور بر آب را می گرفت. دقت می کرد چه چیز روی آب شناور است. به قایقران گفت آقای مورا هنوز زمان جزر است؟ و چشمش را بر تکی الوار دوخت که از آب گرفته بود. عرض تکی الوار نه و طول آن سانتی سانتیمتر بود. چهره آقای نجیما در هم گرفته شد. فکر کردم چه شده. خودم را آهسته به سمت آقای نجیما کشیدم. بیتردید تکه از الوار کف راه رو بود. بر الوار نخش های سفید کوه فوجی، قایق‌های بادبان برافراشته و دشت پوشیده از کاج باقی مانده و بقیه آن سوخته بود. به احتمال زیاد در لحظه ای که آن گلوله ی آتشین شبهوار در بلندای آسمان باز شده بود، بر اثر حرارت زیاد نقش های مات بر الوار باقی مانده و باقی سوخته بودند. شکی نبود موج انفجار بر این تکه الوار کف و زیده آن را بلند کرده و در رودخانه یا دریا انداخته بود. آقای نجیما تکه الوار را به سطح دریا کوبید. قایق در کرانه راست رودخانه یکی جایی نزدیک پل مییاکی پهلو گرفت. بالا دست رودخانه از پل به بعد با دود سیاهی پوشیده شده بود تا جایی که روشنایی شعله ها اجازه میداد نگاه کردم اما نفهمیدم اطراف شهرداری چه شده است مانند زمان غروب کامل خورشید تاریکی پرید رنگی همه جا را فرا گرفته بود شهرک سندا هنوز نسوخته بود بنابراین پیاده شدیم اما پلیس کمربندی حفاظتی ایجاد کرده و اجازه ورود و خروج نمیداد همسر آقای دوئی گفت ما اهل شهرک سندو هستیم بچه های ما در خانه هستند برای چه نباید بگذریم من رد می‌شوم و به پلیس ها نزدیک شد پلیسی با خشونت گفت کمربند حفاظتی است وقتی میگویند برگرد یعنی برگرد آقای ناجیما با ناراحتی از محل مانه فاصله گرفت و رفت بعد برگشت و در حالی که اشاره می کرد با صدای آهسته گفت همه باشته سر من بیایید در چنین مواقعی باید از دوز و کلک پیشینیان تقلید کرد خیلی خوب، بدون توقف پشت سر من بیایید موقع گرفتاری تیو شی او هم همین کار را انجام داد بدون توقف پشت سر من بیایید آقای نجیما از آستانه خانه معمودی وارد شد و از در عقبی آن خارج بعد از در عقبی خانه پشتی به سمت در ورودی آن رفتیم تا به گذرگاهی وسیع رسیدیم به هر خانه که نگاه می کردی دیوارهایش ویران بود و کسی هم در خانه نبود همسر آقای میاچی گفت وای چقدر عجیب من هم تعجب کردم هرچند می توان گفت زیرکانه بود اما اگر کسی در آن خانه ها حضور داشت چه می احتمالا ساکنان همه خانه ها از ترس آتش فرار کرده بودند قلبم در زمان خروج تندتر از زمان ورود می توبید.